فصل 24 چهارم در روز اول هفته یکشنبه صبح خیلی زود سر قبر آمدند و هنوتی را که تهیه کرده بودند با خود آوردند آنها دیدند که سنگ از در مقبره به کنار قلتانیده شده و وقتی به داخل رفتن از جسد عیسی اثری نبود مردد در آنجا ایستاده بودند که ناگهان دو مرد با لباسهای نورانی در کنار آنان قرار گرفتند زنان وحشت کردند و در حالی که سرهای خود را به زیر انداخته بودند ایستادند آن دو مرد گفتند چرا زنده را در میان مردگان می‌جویید او اینجا نیست بلکه زنده شده است آنچرا که در موقع اقامت خود در جلیل به شما گفت به یاد بیاورید که چطور پسر انسان میبایست به دست خطاکاران تسلیم گردد و مصلوب شود و در روز سوم قیام کند. آن وقت زنان سخنان او را به خاطر آوردن وقتی از سر قبر برگشتند تمام موضوع را به یازده حواری و دیگران گزارش دادن. آن زنان عبارت بودند از مریم مجدلیه، یونا و مریم مادر یعقوب، زنان دیگر هم که با آنان بودند جریان را به رسولان گفتند، اما موضوع به نظر آنان محمل و بیمعنی آمد و سخنان آنان را باور نمی کردن. اما پتروس برخواست به سوی قبر دوید و خم شده نگاه کرد، ولی چیزی جز کفن ندید، سپس در حال که از این اتفاق در حیرت بود به خانه برگشت. همان روز دو نفر از آنان به سوی دهکده‌ای به نام امواس که تقریبا در دو فرسنگی اورشلیم واقع شده است میرفتند. آن دو درباره همه اتفاقات گفتگو می همین همینطور که سرگرم صحبت و مباحثه بودند، خود عیسی سر رسید و با آنان همراه شد. اما چیزی جلوی چشمان آنها را گرفت به طوری که او را نشناختند. ایسا از آن پرسید، موضوع بحث شما در بین راه چیست؟ آنها در جای خود ایستادند قم و اندوه از چهره های ایشان پیدا بود. یکی از آن دو که نامش کلیوپاس بود، جواب داد، گویا در میان مسافران ساکن اورشلیم تنها تو از وقایع چند روز اخیر بیخبری. ایسا پرسید، موضوع چیست؟ جواب دادن، عیسی ناصری مردی بود که در گفتار و کردار در پیشگاه خدا و پیش همه مردم پیامبری توانا بود اما سران کاهنان و حکرانان ما او را تسلیم کردند تا محکوم به اعدام شود و او را به صلیب میخوب کردند امید ما این بود که او آن کسی باشد که میبایست اسرائیل را رهایی دهد از آن گذشته الان سه روز است که این کار انجام شده است علاوه بر این چند نفر زن از افراد ما ما را مات و متحیر کردند. ایشان سهرگاه امروز به سر قبر رفتند اما موفق به پیدا کردن جنازه نشدند آنها برگشتند و می‌گویند در رویا فرشتگانی را دیدند که با آنان گفتن او زنده است پس اده ای از افراد ما سر قبل رفتند و اوزار همانطور که زنان گفته بودند مشاهده کردند، اما او را ندیدند سپس عیسی آنان فرمود شما چقدر دیرفهم و در قبول کردن گفتههای انبیا كن ذهم هستید آیا نمیباید که مسیح قبل از ورود به جلال خود همینطور رنج ببیند آن وقت از تورات موسی و نوشته انبیا شروع کرد و در هر قسمت از کتاب مقدس آیاتی را که درباره خودش بود برای آنان بیان فرمود در این هنگام نزدیک دهگدهی که به طرف آن می رسیدند رسیدن و گویا او می خواست به راه خود ادامه دهد اما به او استرا کردن پیش ما بمان چون غروب نزدیک هست و روز تقریبا به پایان رسیده بنابراین عیسی وارد خانه شد تا پیش ایشان بماند وقتی با آنان سر سفره نشست نان را برداشت و پس از دعای سپاسگزاری آن را پاره کرد و به ایشان داد در این وقت چشمان ایشان باز شد و او را شناختند ولی فوراً از نظر آنها ناپدید شد آنها به یکدیگر گفتند دیدی وقتی در راه با ما صحبت می کرد و کتاب مقدس را تفسیر می کرد چطور دلها در سینه های ما می تپید آنها بیدرنگ حرکت کردند و به اورشلیم بازگشتند. در آنجا دیدند که آن یازده هواری به اتفاق دیگران دور هم جمع شده می آری در واقع خداوند زنده شده است شمعون او را دیده است آن دو نفر نیز وقای سفر خود را شهر دادند و گفتند که چطور او را در موقع پاره کردن نان شناختند. در حالی که شاگردان درباره این چیزها گفته گوم کردند ایسا در بین ایشان ایستاده به آنها گفت: صلح و سلامت بر شما باد. آنها با ترس و وحشت تصور کردند که شبهی میبیند، او فرمود: چرا اینطور آشفته حال هستید؟ چرا شک و شپه به دلهای شما رخ نمی کند؟ به دستا و پاهای من نگاه کنید خودم هستم به من دست بزنید و ببینید شبه مانند من گوشت و استخان ندارد این را گفت و دستا و پاهای خود را به ایشان نشان داد از فرت شادی و تعجب نتوانستن این چیزها را باور کنند آنگاه ایسا از آنان پرسید آیا در اینجا خوراکی دارید؟ یه تک ماهی بریان پیش او آوردند، آن را برداشت و پیش چشم آنان خورد و به ایشان فرمود وقتی هنوز با شما بودم و می گفتم که هرچه در تورات موسا و نوشته های انبیا و زبور درباره من نوشته شده باید به انجام برسد مقصودم همین چیزها بود بعد اسهان ایشان را باز کرد تا کتاب مقدس را بفهمند و فرمود این است آنچه نوشته شده که مسیح باید عذاب مرگ را ببیند و در روز سوم دوباره زنده شود و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همه ملت‌ها اعلام گردد و شروع آن از اورشلیم باشد شما بر همه اینها گواه هستید خود من تییه معود پدرم را بر شما میفرستم پس تا زمانی که قدرت خدا از عالم بالا بر شما نازه شود در این شهر بمانید. بعد آنان را تا نزدیکی بیت انیا برد و با دستهای برفراشته برای ایشان دعای خیر نمود در حالی که آنان را برکت میداد از آنان جدا و به با عالم بالا برده شد. و ایشان او را پرستش کردند و سپس با شادی عظیم بر شلیم برگشتند و تمام اوقات خود را در معبد صرف حمد و سپاس خدا کردند